صفه 1126 در این تشریف فرمائی سلطنتی، هست شاهزاده دستور دادند تا بهترین غذاها توسط آشپزهایشان برای پذیرای سلطان و ملکه و بزرگان دربار تدارک شود. ضمن کلیه میهمانان از درخت آوازخان و آب زرین و پرنده سهرنگو دیدن کردند و زبان به تحسین آنها گشودند. سلطان پرنده سخنگو را بسیار دوست داشت زیرا او بود که حقایق را بر سلطان آشکار ساخت. پس از بازدید کامل همراهان سلطان و ملکه از این قصر ییلاقی و صرف غذا و انجام استراحت کافی همگی سوار بر اسب شده و به سوی کاخ سلطنتی به افتادند سلطان در حالی که شاهزادگان در اطراف او بودند. و پشت سر او ملکه در کنار شاهزاده خانم و سایر بزرگان اسب میتاختند و مردم شهر در خیابان ها صف کشیده و با حله حل و پایکوبی شادمانی خود را از نیک فرجامی خاندان سلطنتی و ملت ایران ابراز می کردند. مردم تنها سلطان ملکه و شاهزادگان را نگاه نمی کردند بلکه در عین حال شیفته پرنده سخنگو بودند که در طول راه با نغمه خوش نوای خود سبب شده بود تمام پرندگان خوشصدا از دورترین باغها خود را به نزدیکی قفص او برسانند و با او هم صدا شوند. در شبی که خانواده سلطنتی به کاخ مراجعت کردند، تمام قصر، نورباران و روشن بود. در همه جا جشن سروری بزرگ برپا گردید و ملکه به جبران سالهای نامرادی و ناکامی، سالهای کامیابی و شادمانی را در کانون گرم خانوادگی، با شوهر و فرزندان دوست داشتنی خود آغاز کرد چون سخن شهرزاد قصدگو به اینجا رسید شهریار از قدرت بیان و نیروی حافظه او تحسین فراوان کرد و روح انسان دوستی او را ستود که با بیان قصدهای شیرین و آموزنده و با استقبال از مرگ و حس اعتماد به نفس خود توانسته بود جان هزاران نفر دوشیزگان بیگناه و زیبای کشور را از فرمان ظالمانه سلطان رهایی بخشد و سلطان را آنچنان شیفته بیانات خود سازد که مرگ آنان را از امروز به فردا افکند و تا پس از گذشت 1001 شب سلطان حالت عادی خود را باز یابد و شاهزاده را به مقام ملک بودن کشور ارتقا دهد و او را از مجازات مرگ برهاند شهرزاد هم با سپاسگزاری و قدرشناسی به پای سلطان افتاد و هر دو یکدیگر را در آغوش پرمهر خود گرفتند نخستین کسی که از این خبر خوش آگاه شد نخست وزیر پدر شهرزاد بود که این مجده بزرگ را زمن اعلامیهی به آگاهی مردم رساند که شهریار از این پس همسری نخواهد گرفت زیرا شهرزاد ملکی سراسر کشور شناخته شده است در برابر خدمات ارزنده و فداکاری و از خودگذشتگی شهرزاد، تمام مردم مراتب سپاس و قدردانی خود را از ملک شهرزاد ابراز داشتند و شادی و کامیابی و زندگی خود را مرحون او میدانستند. پایان کتاب داستان‌های هزار و یک شب